بعد برویم رشت، بندر انزلی و در آن کلبه ی کوچک تو پشت درختان نارنگی چند روزی بمانیم. ای قربان شما به الهی قدمتان روی چشم گیجم کرده اید مستم کرده اید بیای تو به چشم پدری عجب گلزاری ساخته ای مرد این پسر مال شماست خدا به شما او دورا اینکه توی سبد است جنسش چیست ای قربانتان بشوم الهی نگاه کنید. خانتان خالی خالی است به آقایم حسین قسم که میخواستند و ندادم منت چرا بگذارم مال خودتان است اجازه نداشتم به کسی بدهم آهای خانم جان بچهها بیایید اینجا را نگاه کنید. اه شما اینجا هستید پس چرا صدایتان در نمیآید میبینید آقبت برگشتند ای خدا ای خدا بروید آنجا را ببینید چیزهای دیگر هم دارد تخت خواب هم من اما چه می چهار نفری برمی گرد پنج نفری یا امام. این آقا که دیگر فرزند شما دوتا نیست بله نه پدر برادر من است زندان کشیده است از صورتش پیداست یعنی کسی هم هست که زندان کشیده نباشد؟ خب دیگر فراموش کنیم پیش ما میمانید نه؟ نه پدر در راهیم اما زیارتتان واجب بود فدایتان بشه و ملاهی لاقل یک ماه یک هفته خب لاقل دو سه شب امر کنید میمانیم پدر سه شب و سه روز و بعد از آن بالا از راه آستارا باز هم برویم پیش پدر و همسر آن دبیر صد کتابی را زیارت کنیم و خیلی های دیگر را پدرم در های پشت سوالان یک روستا ساخته است هیچ وقت به من نگفتی که آن پشت چنین هنگامه است دانستنش چه فایده داشت سیب زمینی های برشت زیر خاکستر. آزری قدری خمیده میآید اما چه قروری دارد؟ <تصفيق> روی پاهای خودتان نیز ساده اید، بله؟ پیشکشی های ناقابل مرا قبول نکردید نه؟ عجب ناکسانی هستید شما. به عادت نمیگویم مرد شما دو نفر واقعا از آن ناکس دست اول هستید. باشد باشد سالهای سختی بود میدانم دستکم تعمه شلاق سیمی را میدانم و تعم کشنده استراب را من اینجا آن پشت برای صد و نفر جان پناه ساختم آن وقت شما دو نفر در آن بی پناهی همه درد این سالها را آنطور به مشقت گذراندید باشد حالا به نظر میرسد رسد که درد تمام شده. تب هنوز هست که آهسته می رود. میدانم از بستر بیماری برخاسته اید. مزه همه چیز برایتان تازه است. حالا چطور مرد؟ یک کوزه بزرگ اصل از من قبول نمی کنید؟ چرا نکنیم پدر؟ چهار کوزه به جای یکی. اما نه خیلی بزرگ. یکی برای آن جوان کتاب فروش که سالها یرپله ما را میگرداند، یکی برای مادرم که پادرد که سال دارد و علاجش را در اصل ااصل میبیند، یکی برای پسر پسردللاورد که آنجا در تاریکی به فریاد آذر جانش را میخواند، یکی هم برای ما چهار نفر. مرد آذری می خندد <تصفح> نه به آن هیچ نخواستنت نه به این چهار کوزه خواستند، به چشم، ده کوزه میدهم دهم، اصل اصل، اما به اصالت این اصل که روزی آمدی با کندو بردی و حلالت باد که آن روز گفتم که از تو سر است و امروز میگویم گویم که نبود و نیست. خدا شما را برای هم ساخته بود و نمیدانستیم. یادت هست پدر، شما گفتی قدش از تو خیلی بلندتر است و او گفت من خودش را میخواهم نه قدش را و من آنجا لای گلها نشسته بودم و میلرزیدم و میشنیدم وحشت آنکه نخواهیدش و برانیدش دیوانم میکرد چه لحظههایی خدای من آزری سنگین بر کنده می نشیند. کمی پیش میخزد حیمهها را قدری جابجا میکند تا ها باز زنده شوند و به رقص جرقه ها خیره میشود شوهرت مرد بزرگی است اصل، بزرگتر از آن چه به نظر میرسید و میرسد. من میگویم مردان بزرگ فقط سرداران تاریخ نیستند، یعنی سرداران اغلبشان اصلا بزرگ نیستند. مردان بزرگ فقط اهل علم و هنر نیستند. آدمهای بینامونشانی نشانی را میشناسم که از تمام بزرگان جهان بزرگترند، و این گیل مرد کوچک شوهر خوب تو پدر نوه های نازنین من یکی از همان هاست خجل میگویم ممنونم پدر برای 20 سال دیگر نیروی ایستادن به من دادی اما بگذار خالسان قبول کنیم کوچکیم تا بتوانیم بزرگ شویم عوض شویم رشد کنیم و دیگری شویم بزرگ جایی برای تغییر کردن ندارد، وقتی مظروف درست به اندازه ظرف بشود، دیگر چگونه تغییری در مظروف ممکن می شود جز ریختن بر زمین و تلف شدن؟ عجب ناکسی هستی تو گیل مرد کوچک،